خب بسم الله الرحمن الرحیم بابو و سلم باب سلم هم بهش میگن سلم هم سلف سلم و سلف, سلف. میگن پیش فروش حالا من توضیح کوچی که بدن تا حساب کار به دست بیاد من از شما دو گندم گندم میخورم اصل بر گندم گندم موجود باشه قاعده کلی اینو میگه، قاعده کلی اینو میگه اون چیزی که شما میفروشی باید چی باشه؟ مالکش واشی، حاضر واش. ولی یک استثنایی هست به نام السلام، یک استثنایی هست به نام چی؟ الان مثلا فصل گندم نیست، 6 ماه بعد گندم تولید میشه. من میام دو تون گندم از شما میخرم. که شیش ماه بعد شما گندم ما تحویله من بدید من الان ولی باید پوله شما رو دو میلیون تومن تحویل بدن. این معامل رو میگن سلام که خوب شراعت و مراعد الان جلوتر میاره سه اصطلاح رو اینجا یاد بگیریم که در وسط بحث دیگه نیازی به توضیح نباشه یکی المسلم من خریدار میگن یکی المسلم اله فروشنده رو میگن یکی مسلم فیح همون کالای خریدار شده رو میگن چی گندون باشه چی چیزه دیگه باشه پسه باشه فلان باشه فلان باشه با رایتی را که میاد پس مسلم و مسلم اله و مسلم فی. این اصطلاحی که در کتب فیقی کار داره. میگه و سلم و یجوز و حالا و فی ما قد تکاملت فیه خمسط و شروط می فرماید جایز جائز است در چه حال باشه فوری باشه چه معجلن چه مدت دار فی ما قد تکاملت فی خمسات و شروط در اون چیزی که پنج شرط درش کامل باشه ولی این حال بودنش جمهور فقها اصلا اکثر فقها معتقدند که دیگه اون سلم نیست که چه باشه حال باشه به خاطرین در پاورقی آورده گفته امام شافعی امام شافعی یا شافعیه نه که بهتره بگیم شافعیه گفته شافعیه تنها هستند در جایز بودن اینکه سلم حال باشه بقیه گفتن که باید معجل باشه مدت دار باشه عجل دار باشه خلاصه با پنج شرط جائز است با چند شرط؟ پس سلام با پنج شرط جائز است احدوها شرط اول ان یکونه یا یکی از اون پنج شرط نگیم اول تون اول و آخری دیگه نداره یکی از اون شرطا این اصطلاح دقیق تره احدوها دقیق تره از الاوله احدوها ان یکونه مضبوط و صفتی فرط اولش این که صفتش زبط باشه دقیق باشه چون شان چیزی رو ندیدی وجود نداره فردا روز درگیری پیش فا این لم تزبط صفتو کاللوئی والجاهر لم یجست اگر صفتش دقیق نبود ضبط نمی شد منذبط نبود آ جایز نیست مانند لولو و جوهر در جواهرات و لولو خب کوچک و بزرگ وجود داره اه الوازه قلب بودن با هم متفاوتن ها شما موقعی که بیاید جوهر رو بخری یا شش ماه بعد موقع اون اون آورد با اون چیزی که میل دل شما نبود دیگه جهالت هست ولی اون چیزهایی که صفت درشون زبطه مثل گندم در گندم نوعشو که بیان بکنی که پاینتر میاد دیگه حل میشه در جو در کشمش پس سرط اولیده که مضبوط و صفت باشه صفتش دقیق باشه صفتش مشخص باشه و ان يكون جنسا لم يختلط بغيره جنسی باشه که مخلوط نباشه چیزی دیگه باش مخلوط مثلا اگر یک علوفه بود که مخلوط بود با چیز دیگه اینجا هم جهالت پیش میاد مثلا میبینی ارزان زورتش از فلان چیزش درصدش بالاتره یا فلان چیز درصدش از فلان چیز چیه درصدش بالاتره پس جنسی باشه که مخلوط به غیر نباشه فان خالته بغيره كالغاليه والمعجوني لم يجوز میگه اگر مخلوط بود با اون چیزی دیگر مانند غالیه خودش توزی داده ما معروف که به ملمسک و عنبر و دهن اون چیزی که میگه از مسک و انبر روغن تشکیل شده خب اینجا تو هم نمیبری درصد کدومی که از اینا چیه؟ بالتره ببین فقهای های قدیم چیزی که واقعا ذهن انسانو به تعجب بوا میداره فقه فقهای های قدیمه شما فقه امام شافی رو باز کن حالا عبادت که داستانشون متفاوته اونا بحثشون واضحه اونا درشون علت و علت یاری نیست درکت دیگه درکت ولی باز هم در جزیاتش واقعا این فقه اونجا میبینیم ولی در کتاب معاملات کلن که بری وارد بشی اینا چقدر دقیق نص یک نس ها خیلی کوچکه حدیثش ولی اینا این قد دقیق وارد شدن با تعجب به اون اهداف اون نس پیغمبر صلی علیه و وسلم اومد در مدینه دید که به سلام انجام میدن گفت باید م... کهیلتون معلوم باشه وزنتون معلوم باشه اون مدت تحویل گرفتن چی باشه معلوم باشه این فوق ها اومدن از اینا علت این مسائل رو بررسی کردن این علل چیه ها؟ په پی اون قاعده کلی که آقا درش جهالت نباشه قش نباشه فردا روز درگیری بیش تمام این چیزها رو چقدر ریز و قشنگ اومدن بحث کردن اگر باور بفرما همون پویایی که در صدر اسلام و همون فقهی که در صدر اسلام می بود الان خیلی از مسائل اسلام حل شده بودند خیلی از مسائل اسلام چی بودند؟ حل شده بودند منظورم این نیست که اختلاف بین فقها ها پیش نمیومد. اختلاف که از همون قدیم اختلاف نظر بوده و خواهد موند ولی برخورده با این اختلاف خودش بازم یک فقه بزرگیه خب قشنگی کارو ببین نگه که اگر مخلوط شده بود با, غ... با چیزی دیگر مانند غالیه و المعجون چیز معجون مخلوط شده لمیه جز جایز نیست چون درصد معلوم نباشه بارده روز باز هم سبب مشکل میشه و ثالث این این چیارو از کجا آوردن این فقه ها رو خب اومدن اون روایتی رو که, اون روایه که سلام و درش جایز دونسته مثلا بحث کشمشه نمیدوند گندم جوه فلانه اومدن دیدن که اینا بغیر از اون و وزن و فلانش بررسی کردن اینا چیزای تک جنسی هستن قاطی شده نیستن چقدر زیبا قشنگ اومدن استنباد کردن ولی فقه اسلامی زمانی قشنگ میشه که ما در این نکات قشنگ پایبند یک فقه نباشیم بریم فقه ها رو کنار هم بگذاریم نکات قشنگ تمام فقها ها رو چکار کنیم؟ برداریم اگر نه که یک نظریه فقیر و سببی برای درگیری آه نظریات و مختلف و سبب درگیری قرار بدیم اون که دیگه حرف ما نیست خوب. پس شرط دوم اینه که میگه مخلوط نشده باشه چقدر, دقیق، چقدر نقطه قشنگ و الثالف ان یکونه مما لم تدخل علیه النار لی میگه آتش برش وارد نشده باشه برای تغییر دادن اون بازم یه نقطه قشنگ شما یک انسان سطحی و ظاهر رو ببینی میگه این و پرتش چی که اضافش کرده ولی این اون زهد عجیب فقیه و بیرسونه من کاری ندارم ممکن یک نظریه مال فقیه خطا باشد فقیه به چه رفته باشد؟ ولی بحث روی اون نکات قشنگی میگه آتش اونو ندیده باشه برای تغییرش اینش دیگه میگه چرا؟ فان این احالت اگر آتش اونو تغییر داشته باشه که لم والمشوی ما جزمانند پخت شده و کباب شده جاز نیست چرا؟ میگه زیرا این پخت با هم فرق داره شون اون یه چیز پخته شده ای رو میخوای بخری و سلم به عنوان سلم فردا روز پخته با هم چه داره درصد تغییر آتش تأثیر آتش در تمام پخت ها با هم یکی نیست تأثیر آتش در تمام کباب ها یکی نیست بحثم روی این هست که این بحثم روی این نیست که این نظر نظر سوابی بوده یا امام رحمت الله علیه اصلا منظورم این نیست منظور اون قشنگی های فقهای قدیمه ما این قشنگی ها رو به کار بگیریم برای حل مسائل روز برای حل مسائل روز خیلی قشنگ عرض زدید میگه و یجوز فی ما فقه اهنافا شما مثلا میای در قسمت قضای حاجت حالا گرچه یکی دو تا نقطه است میشه روشون نقطه گذاشت نظر روشون نظر هست ولی مثلا میای اینا این قدر ابتدا کتابو واس میکنی روی آداب مثلا قضای حاجت. نکاتی رو میگن بعدا متوجه میشی که این نکات در همون سویی که حدیث بوده ولی لفظ در حدیث نیومده یک انسان سطحی میاد میگه آقا از خودش تراشیده از خودش چیکار کرده خب پس سه و يجوز فيما قد دخلته النار لانقاده چقدر قشره ادامه بحث میگه اما جایزه در اون چیزی که آتش زیرش رفته یا با آتش سر و کار داشته برای منعقد کردنش مانند شکار ها شکار برای کتاب دیلی بقاند بکنند رو آتش میگذارند میگه اینش جایزه اول تصفیه تی؟ یا اون چیزی که روی آتش گذاشته شده برای این که تصفیه بشه برای این که چه بشه؟ مانند اصل اول استخراجی یا اون چیزی که روی آتش گذاشته شده برای این که استخراج بشه کما الورد مانند گلا چقدر قشنگا پس خلاصه ما کاری در روی نظریات فقه ها با هم دیگه اختلافاتی دارند یک مضبوط و صفت باشه دو جنسی باشه که مخلوط به چیزی دیگه نشده باشه سه زیر آتش نرفته باشه برای تغییرش از گوشت تبدیل به کباب شدن از گوشت تبدیل به غذا شدن و پختن اما برای انعقادش باشه برای تصفیش باشه برای استخراجش باشه آتش مشکلی و رابعه ان یکون غیر معین شرط چهارم مسلم فیش اینه که غیر معین باشه منظور دیگه غیر معین چی ها دقت کن فین این کتمر من هذه النخله نخل او طوب من هذه ذه غزل لن میجوز اصلا بگه اگر خورما از این نخل باشه یا لباس از این غزل اون چی رو میگن اون چیزی که ری بافته شده ریسندگیش از این نوع غزل باشه میگه جایز نیست خورما میخری دیگه تعیین نکن باید از نخل فلانی باشه از نخل فلان شخص باشه الان میتونی بگی مثلا مزافتی میتونی بگی مثلا اگر فقیهی نیاد و این حرف خودمونو ایراد نگیره چون این هم میگه یک نوع بعضی میگن این هم یک نوعیه چیه؟ ولی این تعین نیست اینی که من گفتم تعین اون طرف چون مضافتی یک نخل خاص نیست مضافتی ازادی وجود داره طرف در حراج نمیفته چون اگر ما همونیم تعین کردیم ممکنه اون نخل خراب شد بسر اگر من شما او گفتم آقا شما برای من خورما یا خورمای مضافتی ولی باقه فلانی این درست؟ نیست والخامس، الخامس این یکونه مما يجوز بيعه شرط پنجم اینه که این از اون چیزایی باشه که فروششون جائزه فروششون چیه؟ فا این لم یجوز المحرمات لم یجوز اگر فروششون جایز نبود مانند محرمات لم یجوز یعنی اون سلم هم جایز نیست ببین دو تا لم یجوز اینجا اومده اینا واضح میشن این لم یجوز اگر بود از اون چیزایی که جایز نبودند کلم محرمات مانند چیزای حرام لم یجوز یعنی لم یجوز السلم اون موقع دیگه اون سلم جایز نیست و اذا تکاملت شروط المسلم فيه كان لصحه السلم فيه سبعه شرود میگه زمانی که شروط مسلم فیه مسلم فیه باید مضبوط و صفت می بود باید جنسی می بود که با دیگری مخلوط نمیشد باید آتش برای تغییرش زیر آتش نمی‌رفت نرفته بود غیر معین می بود که توضیحش دادیم منظور از غیر معین چیه از اون چیزایی می بود که از محرمات ن... فروشش جایزه فروشش چه این پنج مال مسلم فیه بودند واسه کالا بودند چی بودند میگه وقتی که شروط مسلم فيه كانت لصحه فیه فيه سبعه شروط زمانی که شروط مسلم فيه کامل شدن این پنج شرطی رو که گفتیم تا اینجا کار داشت اون موقع برای صحت خود سلم پیش فروش هفت شرط نیاز هست خود صحیح بودن سلم چند شرط داره هفتا مسلم فیه پنج شرط داشت ونکالا حالا های سلام صحت سلام احدها یکی از اونا چیه؟ انی یصیفه بعد ذکر جنسی وصفش بکنه بعد ذکر جنس آه؟ بعد از اینکه اومد جنسشو ذکر که آغا گندمه جوه فلان چیزه. وصفش بکنه و بعد از دیگه و بعد ذکر نائح بعد از این که نوعش رو ذکر کرده آقا محلیه نمیدونه مثلا گندم داری محلی داری مثلا زابولی مثلا میگن اه؟ این نوعش مشخص بکنه به جمعی اوصافه هلتی یتقصت و ثمن و تمام اون اوصافی رو که تقسیم میشه سمن بر اونها این سمن با توجه اون اوصافشه فان امکانه ثوبه میگه مثلا اگر چی بود؟ ثوب بود لباس بود من کتان او قطن از کتان بود یا از پنبه بود قطن بود ذکر طوله و عرضه اگر لباس بود طول و عرضش رو چکار میکنه؟ ذکر میکنه شما مثلا فرزا امروز یه طاقه تاقا طاقه ها با هم دیگه فرق داره طاقه داری مثل یکی عرضش یک متر یکی داری آ قول خودمون بلند ارز و کوتاه ارز مثلا میگه اگر لباس بود از کتان یا قطر طول و ارزش چی میشه شما میگی که آقا لباس مثلا کتانی میخوام ولی طول و ارزش رو مشخص میکنی و دقته و غیر و غیر اضح غلیز بودن و نازک بودنشو چکار میکنی ذکر میکنی و صفاقته و خفته و اول صفتگی صفت بودن و پختگیش رو و خفیف بودن و سبوکیش رو ذکر میکنی چقدر سفته چقدر مثلا شولی داره فا امکان مسبوغن پس صفاقت علامه ده خدا ترجمه کرده صفتگی و پختگی جامعه من سفتغي خفه خفته وك زده صفاقته فإن كان مسبوغا وصف أجر مسبوغ باشي. باشي. ميكوني. وصف صبغه اگر مسبوغ باشه رنگ باشه اون رنگش رو ذکر ميكون وصف ميكون ولا يجوز سلم في الديباج والسقلاتوني لأن نقوشها لا تزبط بالصفه ميجي جائزني سلم در ديباج و در سقلاتون اينها دو پارچند داره نقش و نگار زیادی هستند. میگه چرا این دوتا جایش دیست زیرا میگه نقشه هاشون زبطه به صفت نمیشن نمیشه دقیق اونا رو کرد وصفشون کرد پس دیباج و سقلاتون سقلاتون خدا آورده بود نوی پارچه عبدیشمی زربافت یا زردوزی شده که آن رو در بغداد میبافتند و خیلی هم مشهور هست باله. خب بریم جلوتر و انکان ذكر ان کان عبدا او عمتن اگر رقیق بود و غلام بود ذکر میکنه اگر برده هست یا کنیز هست هندی هست یا زنگباری هست زنگی هست خماسی هست یا سداسی هست تو مجلا یا خماسی هست غلام خماسی میگه کودک پنج شیبری غلام سداسی یا سبایی میگه اون هست که دیگه از پنج شب رد شده دیگه تبدیل به رجال شده از غلام بودن چی شده؟ سنش از غلام بودن رد کرده بله پس این بحث سنش هست بحث چیش هست؟ سنش خوب لحظه خوب روشن و واضحش میکنه و اینکان از احسانات این ذکرها موصوفتن اگر دارای یا صنعتی باشه اون کاری بلد باشه صنعتی بلد باشه اونو وصف میکنه ولا يجوز السلم في امه حبل ولا ان يكون معها ولدها میگه جائز نیست سلم در کنیزی که بچه در شکمش باشه و همچنین جائز نیست که همراهش بچه اش باشه والثاني بس شرطا گفت شو قفت واصف كارداني اين مواردش؟ شرطا دوونا صحة سلام وميقكي والثاني ان يذكر يذكرا قدره بما ينفي عنه الجهالة الجهالة ذكر بكون اندازي انو باندازيك جهالت ازش مرتفع بشي فإن كان مكيلا او وزنا ذكر ما يعرفه الناس من المكاييل والأوزان اگر اون چیز کیلی بود یا وزنی, ب... وزنی بود اون کل و اون وزنی رو ذکر میکنه که مردم اونا رو میشناسند مردم اونا رو اگر عددی بود عددش رو ذکر میکنه در پارقی چیز قشنگی گفته گفته سلام در اون چیزی که است با وزن جایز است و اون چیزی که وزنیست با کیل جایز است گفته اگر امکان داشت کلش خلاصه پس اون کلها و اون از اینهای که در میان مشهورند اون کل وزن رو مشخص بکنی مثلا کل فلانی بوده یا وزن سا فلانی بوده این رو دقیق مشخص بکنه خب الان که داستان متفاوته مثلا الان وزن در دنیا هزار گرنه موقعیت من شما رو گفتم آقا هزار کیلو دیگه مشخصه همه و يجوز ان این یشتار مجهولا ولا معین و جائز نیست شرط بگذاره کلهای مجهول و معین مثلا یک کیلی هست مشخص نمیشه که چقدر درشت جا میگیره معینشون میگه چرا میگه چون اگر اومد به این مشخص کرد این کیل اومد و این کیله از بین رفت فردا روز بینشون چی میشه؟ باله كت... اه... منظورنيسك كيلي مسان نميدان فلان بازار مردم فلان منطقه خلاصون كيلي كه درش جهالت فرداروس پيش مياد يا اون كيلي كه اگر از بين رفت ديج نمونش شنيسو درگيری پيش و ان كانا ما ضرورا شرطه من اذر الحديد ما يعرف اگر اون چیز مضروع بود یعنی کهیبی وزنی نبود با ذراع بود با قول خودمون متری بود مثلا این شکل شرط میگذاره که باید از, از روح حدیدی باشه اون حدیدی که مشخص مشخصه مثلا میتره درد کل دنیا هست مشخص و قدیوه بوده این چیزها. ولی الان در خیلی از چیزها با تواجب به رشد جهان چیزا خیلی چیزها دیگه جهانی شدن مینو المللی شدن چی شدن؟ مثل میتره میتر دیگه در کل دنیا چیه؟ یک انداز میگه جایز نیست که شرط بگذاره با زراع دست زیرا زراع دست ها با هم دیگه چی دارد؟ فرق دارد لیانها مال مالمن مثلا ممکنه نیم متر باشه و شما سانت ماله باشه ماله اون یکی دیگه خلاصه اگر بود شرطش اینه که مشخص باشه شرطش اینه که چه باشه؟ مشخص این باشه که مشخصه فرق نمیکنه مثل دست آهلی که میگه مایارف مشخص است والثالث شرط 7 ذكر الحلول والتعجيل ذكر حلول والتعجيل ذكر حلول والتعجيل في حوالا هم جايز مدرسان؟ والمدت كي قرار باش تحويلش بده طرف والمسلم فيها این هم باید مشخص بشه این هم باید چی بشه؟ مشخص فان امکان معجلا قدره به اهلتی و شهور العربیتی اگر مؤجل بود چون حال هم از میدونستن، میگه اندازش میگیرند با هلال ها و ماهای عربی مثلا آقا شنو اینو رمزان به من تحویل بده رجب اینو به من تحویل بده فلان روز رجب اینو به من تحویل بده روز رو باید تایین بشه دقیق ولی اجوز و الان نروز و المهرجان میگه به نروز و مهرگان یا مهرجان جایز نیست. خب البته این در خود شافیه اختلاف در زیر گفته قول راجع اینه که جایزه چون اینا هم مشخص موقعی که من شعاره میگم نوروز خب مشخصه دیگه, دیگه هدف اینه که وقت تعین باشه دقیق باشه نه هدف چیه؟ بله بس این هم طبق قول راجعشون جائزه ولا الى الاطائی والحساد اما این جایز نیست که مثلا وقت تحویل گرفتن رو به حصاد متوقف بکنن چون گاه موقع پیش و جلو داره عقب و جلو داره حصاد درو کردن این چه داره؟ جلواغب داره وقت شده شد منظور اینه که وقت دقیق تنظیم بشه وقتی باشه؟ دقیق باره پس سرط سفم که وقتش وقت تحویل گرفتنش وقت مشخص باشه والرابع ان یکونه موجود وقت الاستحقاق في الغالب. شرط چارم اینه که اون چیز مسلم فیح اون چیزی که خریداری شده وقت تحویل دادن غ... در غالبا موجود باشه استحقاق منظور همون موقعی که قراره که طرف قرار گذاشتند که تحویل بده مثلا من شما, شما رو گفتم آقا دو تون گندم منو بده در مثلاً زمستان خب با, با گندو اول تابستان بعد از بهار درو میکنند مهم اینه که اون غالبا اون موقعی که وقت استحقاقه موجود باشه ولی دو مثلا قرف ها فرق میکنه شما میبینید یه چیزی در قدیم در زمستان نبود ولی الان هست چون قدیم بازار قدیم بازار جهانی نبود سن شام بود فرزند میگه مکه بود و فلان جا گندو رو که شامی ها رسند رو میکردن میاردن فرزند به مدینه میارن کجا؟ ولی الان بازار جهانیه الان بازار چیه؟ از کل دنیا این رو کار میکنن میارن هواهای دنیا با هم متفاوتن یه چیزی الان اینجا میرسه فصلش. شش هوابت جایی دیگه شما الان ببین مثلا کشور خودمون هندوانه چند ماه تو بازار وجود داره سردخانه نیسا یه منطقه فلانجا تولید میشه یه منطقه فلانجا یه منطقه فلانجا منظور اینه که این چیزها در تغییرات دنیایی در نظر گرفته بشه یعنی ما اون پویای قدیم ها در فقه داشته باشیم پس موقع استحقاق میگه وجود داشته باشه فان جهل جوهی لوجوده لبیجوست اگر مجهول باشه وجودش در اون وقت جائز نیست ولا یک ان و وقت العقد مفقودن مشکلی نداره که موقع بستن قرارداد موقع بستن معامله اون چیز موجود نباشه اذا و وقت الاستحقاق موجودن اما زمانی که اون وقت تحویل دادن چی باشه موجود باشه آخه تو که نقدی اونو نخریدی تو اونو برای شیش ماه بعد خریدی ببین دنیا امروز با دنیای قدیم متفاوته چیزی رو که در دنیای قدیم فقط در فصل خاص بود الان خیلی هاشون در اکثر فصلها ها چی هستن؟ موجود هستن اخصوصا با سردخونهایی هایی که خب خوب شد بحث سردخونه اومد مثلا الان بعد تو برات طرف باز مشخص کنی در ذکر اوصافش که این سردخونه یا تازه است چون اون موقع سردخونه ای نبوده که فقها اینو در کتابشون ذکر بر ولی الان شما موقعی میبینی مثلا الان خودمون رمضان موقع میبینیم مخ... سیب میخریم یا مثلا پرتقال میخریم میبینین خیلی از اینا چه هستن سردخونه ای ها والخامس أن يذكر موضع قبضه من الأمكنات الممكنة شارد البعض مشينيك أون جايك ترفون تحفيل ميجيري ذكر بشي أزون جاهايك ممكن حصل. لا سيئ ما مخصوصا فيما لنقله مؤنه يمؤنه مخصوصا زمانيك در نقلش خرج باشي شونا مثلا؟ أجل آقا شما اینا رو بیار فنوج مثلا تحویل من بده سراوان اینا رو تحویل من بده او جا رو تا نکردید طرف تا خاش آورد این هم آوردنش از خاش تا سراوان خرج داره فردا رو چی پیش میاد؟ درگیری پیش میاد پس میگه موقع قبضش معلوم بشه ذکر بشه مخصوصا زمانی که نقلش خرج داشته باشه والسادس أن يكون الثمن معلوما يتقابزان نهي قبل الافتراق فإن تفرق قبل قبضه بطل ميقى سمان معلوم باشه آقا سمان بالمعلوم كني مثلا من دو تون غندم عز سممي خرم شش ماه بعد والخوب قل سماني من بشمامي دم غندم جوه هر که هست خلاصه با تاین بشه باید باشه؟ میگه سمن باید تعیین بشه یک موبایل ویت میده یه موتوری ویت میده سمن باید معلوم باشه قبل از جدا شدن قبل از اگر تفرقا اگر با هم اصلا جدا شدن قبل از قبض سمن باطن اون سلم میشه؟ باطن میشه پس شرط که سمن معلوم باشه و قبضش قبل از جدا شدن شرط سابع شرط هفته ان ایکون العقد ناجزا لاید خلو خیار و شرط آقا عقد ناجز باشه فوری باشه همونجا نقدی انجام بگیری اینجوری نباشه که طرف بگه من میرم تا دو روز تا سه روز چیکار کار میکنم؟ نگاه میکنه. میگه خیار شرط در سلم نیست اونجا خوندیم در معامله هست ولی در سلم نیست, نیست. پس میگه اقل ناجز باشه خیار شرط درش نباشه و لهما خیار المجلسی مالمیت فرقا خیار مجلس هست من و شما معامله سلم رو با هم زدیم ولی تو هم جدا نشدیم مجلسمون همونی یکیه اختیار برگشت داری. من شما تو این اتاق قرارداد از سلم پیش فروش رو زدیم سکوت کردیم و بحث عوض شد شما رفتی بیرون خلاص جدایی بدن و خیلی از فقه ها جدایی میدونن شما رفتی بیرون بگذار روی چیزای متفق علیه حرف بزنیم دیگه خلاص بسته میشه ولی تا زمانی که تو این اتاقی با همین خیار مجلس وجود داره دالمی تفراقتوا زمانی که از هم جدا نشده باشند پس خیار مجلس هست اما خیار شرط در سلام نیست و يجوز اخذ الرهن في السلم گرفتن رهن هم جایزه به شما رو موک میدم مثلا 50 کیلو عدس که شما دو سال بعد مثلا منو بديد دو تن دندان مثلا ميدن من از асоشي بگیرم رهن بگیرم از گرفتن رهن در سلام ولا يجوز فيه الشركه ولا التوليه قبل القبض اما شراكه توليه قبل القبض جائز نیست شراكه توليه قبل از قبض جائز نیست شراکت که خود معلومه طولیه دیگه چیه؟ طولیه بله طولیه یک معامله به این شکل چیزی رو به همون قیمت که من خریدم به کسی دیگه میفروشم این میگن چی؟ تولیه چیز معینی رو با یک سمن معلومی من میخرم سپس اونو با همون قیمت همون کالا رو با همون قیمت به کسی دیگه میفروشم اینو میگن تولیه در فقه آورده انقال الرجل والیتو کعیه در معاملات به زبان عربی اینجوری میگفتن والیتو کعیه منظور شمین بود که من این چیزو به شکل تولیه به شما فروختم یعنی فروختمش به شما به همون قیمتی خودم اونو خریدم لفظ تولیه که به کار می رفت دیگه شخص باید به همون قیمتش میداد. باید به همون اینو امام ابن قدامه در کتاب المغنی آورد توضیح شد با این شکل. ولا يجوز یجوز بیع الامع الا السلام و جایز نیست بیع شخص کور مگر در چی؟ در سلام. خب بیع کور و خیلی اسفقا جایز درستاند. اگر دقیق وصف بشه ولی تفصیلاتی هست فکر احناف هم تفصیلاتی داره و جایز نیست میگه به کور مگر در سلم و وک معامله کور پس جایز میگه نشد ولی در سلم جایزه چون در سلم وصفش میکنه خب بابا موقعی که در سلمی که اصلا بهش نمیدی جایزه با وصف حضوری رو به دقیق وصف دکنی مثلا فرزن موبایل موبایل آ پنجاه خب موبایل آ پنجاه مثلا میگم شون موقعی که میگی آ با محاصفات دقیق اصله این میتونه واقعا مشکلی داشته باشه یعنی کورهار رو خدا چشم نداده از بعضی تصرفاتی که منطقی هستن خب دیگه این منظورم اینه که بحث زیر سوال بردن نظریه نیستا بحث اینه که اون فقاهایی که گفتن جائزا سخنشون منطقی تر و به مقاصد کلی دین نزدیک تر پس می جایز جائز نیست خلاص شافعیه بزرگواران شافعیه می فرماید جائز نیست به اکور مگر در سلم و یو اکل و بصیرن یق به دولهو و یق به چقدر وکیل میگیره مو وکیل میگیره یه انسانی رو که براش قبض بکنه و براش هم تحویل بده خب در معامله غیر سلم همین کار بکنه اصلا بدون وکالت اینا بحثای مفصلی مکاری نداره یکی جایز نیست به اعما مگر در سلم وکیل میگرد بسیری رو بینایی رو که قبض میکنه برای شخص و بجایشن قبض میکنه یعن تحبیل میده و کل ما جازه فيه سلام سلم جازه بود هر چی که درون چیزها ها سلم جایز بود قرض دادن و قرض گرفتن هم درشتیه جایز است الا الجواری جز جاریه جز رقیق آه و یا رو مقترز مثل ذلمثل اونی که قرض گرفته مقتر مقترز بر میگردوند مثل اون چیز رو که مثل داره اگر چیز از اون چیزایی که بود که مثل داشت مثلش رو چکار میکنه بر میگردونه یکیلو یک گندومه یک کیلو گندوم مثلش چکار میکنه؟ و قیمته غی غیری دی المثل و اون چیزی که هم مثل نداره به اینهی اونو قیمتشو برمیگردونه اونو چکار میکنه؟ قیمتشو برمیگردونه پس اون چیزایی که مثل دارند مثلشو برمیگرده و اونایی که مثل ندارن قیمتشو رو اون کسی که قرض گرفته، الا این یکون باقی، فرارد. مگر این که باقی باشه. مگر این که چیزی که قرضش گرفته چه باشه، که خودشو باز میگردونه. این شد از کتاب السلام. جز الله الشافیه خیر الجزاء. بله